اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین بحث مالکیت فکری جلسه 12 بعد از بیان ادله موافقین و مخالفین از فقها را در رابطه با مالکیت فکری و بعد از اینکه خود مالکیت فکری تعریف شد و سابقه او در کشورهای مختلف بیان شد و اختلافی که فقها خودشون با هم دارند فقها با حقوق‌داران ها دارند و تعریفی که شد بنا شد ما بیاین های این بحث رو تبدیل بکنیم یکی از واجه ها بحث مال است که اصلا مال یعنی چه و چه چیزی مالیت دارد در جلسه قبل ما هفت تا تعریف کردیم از علما و حقودان مختلف که مال به چی میگن چه چیزی مال حساب میشود هفت تعریف آمد و مورد تذکر واقع شد اما بحث این است که ملاک مالیت چیست اول این بلد مشخص بشه چه چیزی باعث شی می میشود تا بهش بگیم مال که اگر اون ملاک نبو پس ایشه مال نیست ملاک مالیت اشیا به چیست خب برای اینکه ملاک رو پیدا کنیم وقتی که به گفتار بزرگان پی میبریم و تحقیق کنیم چه فقها، چه حقوقدانان، به تعاریف های مختلفی برمیخونیم که چه بس ها بعضی چند تا از این تعاریف ها رو مفتن. این نیست که هر کسی یه تعلیف رو قبول کرد اون بقیه رو قبول نداشته باشه شویسا نه یک کسی که داره مالو رو تعلیف میکنه تا از این تعلیف ها رو سه تا از این تعلیف ها رو قبول دارن در نتیجه اینا با هم مانع طول نیستند، نیستن ولی مانع طول هستن نمیشه هیچ کنون از اینا نباشه بالاخره مال ملا... ملاکی داره، مناطی داره چه چیز باعث میشه ما به یک یک یکی بملا رو تعریف کنیم ملاک اول گفتن چیزی مال است که مردم به او رغبت و میل داشته باشند منشأ مالیت رغبت و مال مردم است آن که مردم و اور به او میل پیدا بکنن بعضیا به این تعریف قیدی اضافه کردن گفتن علامتش اینه که حاضرن. برای به دست آوردن او بهایی به پردازن کسی که به علاقه داریم می به دست بیاره دیگه اگه شد مجان شد اگر نشد یه چیزی بلاخرد پرداخت میکنه هزینه میده تا رو به دست بیاوردن حالا آیا این پرداخت هزینه که مردم حاضرند در مقابل هزینه پردازن جز املاک مالیت است یا نه لازمه ملاک است ملاک هر همینه، مال چیزی است که مردم به او رقبت و میل داشته باشن اینو میگن مال از میشه اینا رو دو تا تعریف حساب کردم یک بگیم مال اون چیزی که مردم به او رقبت و میل داره هر چیزی که مردم به اون رغبت و میل داشته باشه میگه معادل مال نمیشه ها بله میشه تعریف دومی کرد. هر چیز که مردم به اون میل داشته باشن یک و در مقابلو حاضرن حزینه پرداخت کنن امکان در بعضی چیزها مردم میل بودارن ولی حاضر نیستن حزینه پرداخت بکنن آه. مثلا نگاه کنید شما در این مقاضی دارید میگذارید مقاضی شیرینی فروشی خیلی خوشمزه است مثلا بچه ها آه میگه بابا جون نام داره عینه بکنید و چه بابا چه بچه هر دو دوست دارم دیگه شیرینی قضا بوش بریم میاد چه کباب میل ندارم ما چلو کباب بخوریم چرا؟ ولی حاضر نیستم پول از این کنیم چرا؟ مثلا این آدم گنهکاری یا نه الان پول ندارم الان برای کارهای دیگه لازم دارم <تصفح> اصلا گرونه من نمیتونم خرج این بکنم حاضر نیستم الان میل دارم ولی حاضر از اگه مفت به من بدم خوبه گاهی موقع دیدی شباییای جوایی که میریم خیرات میدن شربت، چایی، کنار یا بونا مثلا ایام وفایا، تعیاد الی آخر، اون شربت رو همه دوست دارن. ولی گاهی موقع شربت پولیه، <تصحن> نه، فود باشه نیست. یه موقع مجانی چرا؟ مجانی اگه باشه میریم خوره و خلاصه میگیم. خب پس دو, دو تا تعریف این که بگیم مردم میل دارن علامتی این حضر پرداخت میکنن همیشه همیشه اینجوری نیست خیلی چیز در میل داره وقتی حاضر نیست پروبالش بده مثلا یه خونه رو دوله خیلی عالیه، شیک ماشاءالله شالله چقدر زیبا، وسیع با صفا، با روح، جادار با همه امکانات و میل داره دیگه ولی حاضر نیست حضر پرداخت کنه میگه نه ما این بده برای یه خونه اینجوری احیانی بریم مردم ببینن چی میگن به ما نگاه کن اینا به فکر مردم نیستن به فکر دنیان آه. اینا به فکر خوش و راحتی یا خودشونن حاضر نیستی به حزینه پرداخت اونجا میل هست ولی پرداخت حزینه حاضر نیستیم ما یا بله. مثلا شما رفتی شهرک پردیسان چه شه شهر تمیزی همه آپارتمان شیک هوا خونک سرسب تمیز بلوک میرم داری ولی حاضر اینده از پردا کنیم اگه مفت به من بدهیم و شاید بیام اونجا بشینم. اگر پولی نن نمیم چرا چقدر فاصله داره با حرم خلوت، سود، کور، اصلا روح مرد اینکار اونجا هست اصلا کسی چی کاری نداره اصلا مجانیم با مجانی آدم برم من که حاضر نیسته برای اونجا زندگی کنم آره من تو شهر باشم، کنار حرم باشم، کنار حوزه باشم این من نمیدونم 18 کیلومتر اونور دو طرف از غرب منم چه کنم مثلا اگه وسیله نداشته ندوشه هیچ که رفت آمد مشکلی بده و میلشه دارم رقبت دارم یک چیزی که خونه مال ما بود ولی نه پول حاضر سم اگه مفت بدن خب چرا چاره نیست میرم حالا خونه ندارم اما نه پول پرداخت کنم من نبر اونجا پول پرداخت نمیشه دیگه اینو دو تا تعریف نه یه تعریف یا بگیم اون چیزی مردم میل و رغبت به دارن یا بگیم نه، که مردم به اون میل و رقبت دارن و حاضرن حزینه براش برایش پردا کنیم این میشه دوتا ترین خب، بعضی ها گفتن منظور از اینکه رقبت او پیدا کنن کیه؟ منظور اغلا رقبت او داشته باشن؟ بگیم آقا، چیزی مالیت داره که اغلا نسبت به او میل و رقبت داشته باشن تا اون شید بشود مال؟ بعضی اشکال ترمی بیتن نه، قید اوقلا رو نباید بزنید چرا؟ چون خیلی از امور که اوقلا رقبت ندارن ولی امکان داره بعضی از افراد جامعه بعضی به اون رقبت پیدا مثلا فکر که عکس خانوادی که الان اکس پدر بزرگ اکس فامیل باش با خیلی بانده. خیلی می رو رقابت دارین حاضر پولم بدی عکس پدر جام کو عکس امنی من کو عکس فرمیله ما کو اما به اوغلا عکس فرمیلوشون رو در اوغلا می چیکار میکنن چه دردشون می نه اونو میل ندارم ببین عکس فرمیلوشون رو خودی شما باشه من خب چه کنم لازم ندارم حتی ما مفتم به من بدین میگم به دردم نمیخوره ما چیکارش خب میکنیم بگیم بله بین عرف عام در عرف عام بهش میلو رقبت هست ولی به نظر من این ایراد وارد نیست جوابش هم درست چرا؟ اینکه میگن چیزی باشد که اغلا به اون میلو... لازم است همه اغلا به با داشته باشه این به نفع قضیه حقیقیت یعنی بعض از افرادم به اون میلو داشته باشن هم سرق میکنن تو آلم کدوم چیزی که همه آلم بهش رقبت با داشته باشه نه حتی زن گرفتن بزار بار نداره به زومی بر رو زن بگی نه پس پس آب زن چیز مربوببی نیست مطلوبی نیست چرا لذا حالا اینکه زن گرفتن جدا فطریات و ذاتیات انسانی اینجوری چه چه به چیزهای دیگه؟ خیلی شده تو مربومش مایل هم شر یا مایل نیستن و بله، تو شهر ماین تو قرب مایل نیستن مثلا همیشه به قاره غذا با, با فلفل بخورن غ فلفل نداشته اوچه؟ لا باراخ بعضی از قضایی که فیل, فیل داره اصلا دوست نداره به نمی سازه منافات نداره با میل اینکه می میل داشته باشند لازمه کل اوغلای عالم هم که بعضی از اوغلا در بعضی در مکان زمان هم همین کفایت میکنه جزء عرف هم همین گروه چون اینکه به جای اوغلا به این عرف عام تو عرف آمم هم, هم اشکال عرف عرف عرف دیم دیم. بله همین اشکاله همه عرفا به بعضی از عرفا بعضی از عرفا به ملاک همین عکسی که شما میگید فامیل من میل نداره اینو ببینن دیان میل نداره مگه فامیلش اورفا فقط من فامیل شما هستن کل جامعه رو میگن اورفا در حالی که کل جامعه به این عکسی که خانوادگی شما اصلا علاقم نداره به دردشون نمیخوره کاری نداره و چیزهای دیگه خیلی از شغل هاست که معنی منطقش علاقه داره مردمی منطقه سمش علاقه نداره این قوالوار سر نمی‌کنه من سر می‌کنه از جا جابجا کردن لفظ عرف عام با بنای اوغرا کار رو درست نمیکنه نه بگیم ملاک مال اونه که اوغرا حالا یا همه یا بعضی یه منطقه خاص ولو به نقد موجبه جزئیه میل و رغبت به او دارن یا علاوه بر این بزنین و حاضرن در مقابل او هزینه پرداخت بکنن این می شود ملاک مالیات یه تعریف پس چیزی مالیات مالیت دارد که میدون رقبت مردم بگوشه یا حتی اضافه کنه، حاضر در مقابلش مالم بدن حالا تو مالکیت فکری واقعا این پدیده ها و محصولات فکری افراد که میشن اختراع میکنن، چیز نو، حرف نو نظر پردازی، تئوری پردازی میکنن های از ذهنشون یک چیز ترامش میکنه به وجود میآین آیا صغر میکنه برای اینا مالیت؟ بیان بعد چون اگر ما نگیم همه اینا قالب چیزای جدید مورد میل مردم هست مورد میل همه مردم باشه ولی گروه خاص تو هر رشته ی چیز جدید همه دنبالش میره ببینیم چیه؟ آن این حرف چیه؟ حرف جدید اصلا نه روایت هم داریم اِنّ لِكُلِّ جَدیدِ نَذَّدَن روایت هر چیز تازه یه لذتی داره باشر تبهشرونه تو دنیا هیچ چیز زیاد استفادگی ندارهش عادی میشه معمولی میشه گاهی هم اصلا منفورش میشه بیا خسته شدیم دیگه بعضا نرفتن کار کردن یه خبری نمی گیرن اونجا میمونن یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه سمو میگم تفریح سه دو سه بعدونه خبری دور و بر میگیم تماشای یهو تکرار شد تکرار ماشین و ساختمان ها و اتوبار ها نمی دونم فلام و گردش و پارک و تفریح و غذا ها و عادی شد دیگه لذا هر جدیدی یه لذتی بود پاسخ یه شبهه اعتقادی هم داده دا دا دا دا میشه بعضی‌ها دا میگن آقا ما حالا تو دنیا آدم خوبی بودیم مؤمن گرام نکردیم آخرش می‌خوام بریم بهشت خب تو بهشت چه خبره میگی گلابی هست زعفرون هست گلاب هم هست زنم هست کاغم هست بریلیانم هست الیقا و خسته میشه آدم دیگه چقدر تو رو خورش بخوره یه روز یه, یه, ما. یه سال خسته میشه یورا چلو مرخ و چلو بو غلمانه میدونم گلاب و زفران و بالاخره خسته میشه آدم حالا ما تا ابد برم از بخور بخورم اونجا همه که مثلا زفران و گلابی چی چوچی بخوری؟ یا با هرول این باشی؟ خسته میشیم دیگه؟ جواب اینه که نه روز بهش هر لحظه ایش جدیده تکرار تو بهش روی حالا چجوری ما نمی پیلیم درکنم؟ ما تو دنیا هر چی درک میکنم قابل تکرار دیگه. قضای امروز ما مثل دیروز ماست. میشه شد تکرار. چون من کازای دیروز خوردم، دیزام پول خورش چه مزهای داره. خدا وارمی میخورم. خب حالا گلابی هم گلابی، استیم هم استیم و انگورم هم انگوری. لباس هم همونه، ماشین هم همونه. پس رو چشیدم، ایم شد تکرار. اون چجوری تو بهش اصلا تکرار نیست. هر لحظه جدید همه امتاش. نو. برای اول آدم برخورد میکنه. زو در به آخرم داره هوار اول وار. خدا هم مزه رو یعنی اون نعمت که برخود میکنه اولین بار داره باشه باشه و آخرین بار باشه نعمت بعدی ولی استیب و گلایی باشه، جدیدی نه فرد جدیدی، اصلا این کار با یه میوه جدیدی برخود کرده، با یه مزه جدیدی اصلا تکرار نیست لذا آیون فلسفه میگن لا تکرار فی الوجود و آیون فلسفه میگن لا تکرار فی تجلی جلوه های خدا همه نوعه، تازه هست خدا تکرار نداره تو آدمی لازمه که رو درک بکنه بفهمید تو فرصبه اون تا تکرار در نیست هیچ وجودی تکرار وجود دیگر نیست جدید در ارفان لا تکرار تجلی جلوه های خدا همه جدید نوع حادثه تکرار نیست خب حالا در رابطه با محصولات فکری و معنوی و واقعا مردم به او رقابت داره اصلا طبیعت بشر طبیعت بشر اینه که چیز نو رو دوست داره لباس نو غذای نو دستگاه نو روش نو اصلا هر چیز نو رو دوست داره فكرت همین هست، هر که انکار کنه به زبان انکار میکنه عملا اینجوری نیست چیز جدید چیز فیلم نو ماشین زندگی نو لباس رو پول نو ها آخر اصلا لذت داره برای همه همه رقبتش دارن و میلی به اون پیدا میکنن لذا اینکه بگیم نه محصولات فکری این ملاک رو نه این ملاک تو محصولات فکری پیدا میشه برای چرا؟ تذکنید در داروها، در تطریه ها، در پیشرفته ها خیلی چیزهایی دیگه که مردم باعث میشه از ها نجات پیدا کنند. باعث میشه راحت پیدا کنن برای مشکلاتشون، تو کشاورزی همینطوره قانون داره دیگه چه موادی بزنن چه کودی بزنن چه جوری آبیاری کنن های جدید داروهای جدید قرص‌های جدید آبیاری جدید هان که به مشکلات بر نخورن همه دنبال فکر جدیدن و محصول جدید و تولید جدید لذا چون مردم در زندگی از اونا استفاده میکنن و رفع نیازشون میکنه و بالاتر از همین فطرت بشر برینه اصلا طبیعت بشر بر این است که چیز نور دوست داره و میل و رغبت داره لذا از این جهت چرا محصولات فکری و معنوی اینها مال برای چون میکنند. میکنن چون این ملاک درش هست، مدنون رغبت دارن، میل دارن برن طرفش ببینن، بفهمند استفاده کنن، تجربه کنن، به کار بگیرن، ها منطقه میشه یک اشکالی کرد که آقا محصولات فکری تا یه مدت رقابت بشه است وقتی زیاد شد و تکرار شد دیگه مردم رقابت ندارن دیگه ولی بله چیزی تا جدید آمده خب اش رقابت داره یه موقع توی این کشور پیکان خودمون نداشتی ماشین همه خالی پی. باید پیکان درست کردن ماشین پیکان درست کردن خیلی مردم تو ثبت بودن و نوبت میگرفتن و ثبت نام میکردن و پیکان داشته باشن و سوار بشم و گو بزن و ملدم بخواهم اما از بس آمد و ملدم داشتن الاخر و الاخران انگاه و اقصا میکنم کس دنبال پیکان نمیرون استعمال یعنی موشن اسقاطیه دیگه کسیل رقبت نداره دنبال پیکان بره اصلا نمیخرن به زورم به آدم بدن بگه نه نمیخوام چرا؟ از اون امتحان شده تجربه شده دیده دیگه جا... یعنی جازبه دیگه نداره هم. حالا حالا آیا میشه بگیم؟ مالیت محصولات فکری و فرهنگی مادام است که رغبت باشه اما اگر دیگه رغبتی به اون نباشه او دیگه جنبه مالیت نداره پس از اون موقع به بعد دیگه ارزش مالیت نداره دیگه در ملکیت کسی نیست میشه اینطور بگیم جواب اینه که آیا رقبت و میلی بشهی بالفعل باشه شرط مالیت اینی که مردم به یک شعی بالفعل رقبت و میل داشته باشند یا نه اون شعی بگونه است که شعنیت این را دارد که مردم به او میل و رقبت داشته باشند اگر فعلیت گفتیم باشه لذا محصولات فکری تا یه مدت مالند تا موقعی که مردم رقبت دارند دنبالش میرن میخوانش به قول محلوب طبق تاریخ دیگر از اینه برش پرداخت میکنن خوانا اما وقتی که دیگه جازه باشه از درس الميل و رقبتی از مالیت میافتاد یه مال حساب نمیشه اما اگر گفتید نه منظور از میل و رقبت اعن از فعلی و شعری یعنی یک شی بگونه گونه که اگر مردم تالو ندیدن امتحان تکرار نکرد ببیننش میل به او پیدا میکنن میل به او دارن اگر اینو بگیم چرا این هنو مال هست مثال خیلی همه خونه رو دوست دارند میگه از مستاجر بعدش و از بیخونه خونه بعدا کسی تو حلبی آوات حاضر میذنه کنه اگه مجبور بشی خونه اجاره داشتن هم خیلی سخت سخت تر نباشه هم میل نداره حالا اگر رفاهش اونقدر کامل باشه قوارنش اونقدر آسون باشه که آدم کار نداشته باشه اذیت نکنن آدم آقا آب نریز تو خاموش کن اجاره رو بالا ببر نمیدونم چرا بوق زدی چرا شب اومدی جاره همین دیگه مستجری همین گرفتاری داره به هر کی بود آقایم چون دوستان خونه از خودت داشته بودیم بله حتی من تو اروپا رفتم دیدم قالب مردم مثلا آلمان بودیم قالب مردم خانه ای داشتن خانه هم بود چل و دومه، پنجامه، یعنی خواهد تجرب ما تو ایران ما که کشور مثلا عقب مونده مثلا استعلاع بسطوره اونا که ملاب پول اقتصاده سمو فقط عادی نه چی که پیشرفته و خیلی درجه که چون خونه ها اینجوریه گفت اینا فکر اقتصادی دارن پولشون تو خونه قجره میکنن میرن تو کار تولید میزنن که سود دهی داره میگن اجاره خونه مگه چقدر میخواد بشه مثلا اون موقع مارک بودین مارک بود 1000 مارک گفت هر خونه بخوای, بخوای بخری 500 هزار مارک 1 میلیون مارک با پول بده این پولم چه خابیده است پول خونه خریدی دیگه واسه کاری کرد اما نه من با همین این 500 هزار مارک یه میلیون مارک بازار کار میکنم هی hey, سود سود سود حد در اصال مای هزار مارک باید اجاره بدم هزار مارک چیز هزار مارک؟ مثلا که الادمه لذا اون چون انگیزه دیگری دارن من نشناسی خونه ملکی و خونه خودشون را دوست ندارن دوست دارن مستجر باشن نه اونا طبق قالی اله هم و فرعه از اون را پول بیشتر دست کنم تا خ حالا اگر کسی خونه مستعجلیه یا اصلا خونه نداره چه مستعجل اون سری توش کار تو خابه کنار تو علبی آبادا زندگی کنه یعنی دوست داری خونه رئیسینی باله و میل رقابت داره حالا خونه براش خریده خونه دار شد یه سال دو سال بعد دیگه عادی میشه براش دیگه همین خونه رو مثلا خونه بهدار نشه نه اون رقابت داره ولی خونه شبیه به اون موسمون شو برمی‌داره میل اون رقابتی نداره میشه بگیم خونه الان مالیت نداره به خاطر اینکه بالفعل رقبتی به اون نیست نه میگن رقبتی بالفعل ملاک نیست مردم به اون میل داشته باشن چه شعنن چه فعلا؟ یعنی شعنیت رقبت داشته باشه که اگر به کسی عرضه کنم بگی میخوام نه اینکه آقا چون زیاد استفادگر زیاد دیگه, دیگه میلش تمام شده نه شعنیت رقبت و میل باشه حالا میخواد فعیلیت باشه یا نباشه لیزا اینقدر من اضافه کنیم مال اون که مرد شعنیت این رو داره که مردم به اون میل و رقبت پیدا کنن حالا میخواد زنم همینطوره کسی که میخواد زن میگیرن؟ دوست دارم برن زن بگیرن خیلی دنبالشن، اصلا خواب شب و خوابشون نمیبره روز همینطور الاخر آمد رفت زن گرفت و, و خانواده تشکیل شد و یکی دو تا بچه هم آمد و گرفتاری ها شروع شد و قرونه قه قانوما مثلا اولی آورنول برعکس میذوره و خانوما هم میذور اما شهر مو شوهر واه یه خبری آدم تو بهشت بدی بوده بعد میفهمن بابا و با مادر با راه را بشوری زربشوری کار بکنی اونال حرف بکنی به اجازه بیرون نری مهمانداری هم که اطاعت شوهر بعد اون نمیشه دیگه براسه دیگه غات میل نداره علت خیلی از اینا که طلاق میرن همینه اون خوشایی چند سال و چند ماه اولشونو میکنن دیگه مینال عادی دیگه میان ها ناسازگار دعوا مرافع پدرش پدرچ پولا بعدم طلاق ها اینا دیگه براشون بلفر جاذبه ای ندارن میشه تو حالا زن امر مرغوب و مطلوبی نیست نه زن همیشه مرغوب بود شأنیتشو داره برا بلفعل نباشد تو زندگی همه دعوا دارن اختلاف ثریقه دارن دعوا میکنن قهر میکنن این معنی شیه که اون مرغوب نیست مطلوب نیست دیگه هابسه بیش اومده تکرار میکنم لذا به این تعریف این خیلی رو اضافه کنیم مال چیزی است که شأنیت این را دارد که مردم و افراد فلج جمله اونم نه جمله به او رقابت پیدا بکنن و طریق تربیتیه خزینه براش بپردازان اینو میگن مال لذا ولو تکراری بشود ولی مورد رحمات هم نباشه از مالیت نمیوفته محصولات فکری هم همینطور محصولات فکری ولو چیز جدید است نما بدون به مت پیو پیوا میکنن میل دارن اما وقتی زیاد شد، زیاد استفاده کردن این از مالیات نمیوفته چرا چون این شیءی بالاخره یه فکریه یه برنامه‌ریزه یه طرحی است خودمون پیکانی که مثال زدم حالا ورا مردم دیگه با او این همه ماشینا و امکاناتی که می‌ندارن ولی واقعا ماشین نیست به درد نمیخوره مشکل حل نمیخوره الیزا به کسی که اصلا ماشین نداره پوش هم نداره بهش بگن زوق می‌کنه پس برای مالیات داره دیگه برای برای قالب مردم دیگه ماشین پیکان رقابتی ایجاد نمیکنه اما برای اون کسی که نداره ها پولش اون اصلا ماشینی نداره پولم نداره ماشینای بهتر اونجا رقابت داره سواروزی الان بعضی به موتور خوشحالن میگه آقا موتورش اصلا نگاشم نمیکنه موتور دیدی بله برای بعضی رقابت نداره اما برای اون کسی که اصلا هیچ وسیله نداره مثلا اگه مفتم بخوام بهش بدم یه خدا بیشتر شما رو بیا بیداره قوا کملا، عید کملا، نصر کملا جزا کملا، خیر الجزا، این عرفان بیزنه دیگه پس من اون ماشین یا موتور شعنیت رغبت رو دارد ولو برای بعضیان نیست، یا برای از تکرار اون رغبت یک فعالیت نداشته باشه رضا این دوتا تا هم بعد بزنیم، یکی فعل جمله، همه مردم رازم نیست، یکم رقبت داشته باشد، شأنیت رقبت رو داشته باشد. این میشه مال، محصولات فکری طبق این تعریف آری اینا مال حساب میشه اول از این هر چیز جدیدو فکری جدید، روش جدید، بیان جدید. وقتی سخننرا می می کارش رو میگیره، چون توی شهری جایی رفته کسی این مدل حرف نزده، چه جازبه پیدا میکنه همین میرم پاش میشینه و رقبت پیدا میکنه. ولو به اثر نوروزان بشه تکراری همان نیست که این آقا سخنوند خوب نمیکنه جاذبه نداره ولی شما جاذبه نداره که 20 سال منبر آقا هست اون کسی که تازه اومده الهقا خیلی جذابه به به این آقاش هر قشنگی صحبت کنه ماشالله چه قابل استفاده بله شما حرف این آقا 20 30 سال چنیدی تکراری شده ولی نه رقابت دارن مردم بود لذا کار فیکشن همینطور اختراعات تمام اینا طبق این تعریف مال حساب میشواد چون همه چیز نو میخوان و شعنیت رغمت و میل رو هم دارد. این یکی از ملاک ها که بر کارها و پدیده های فکری و محنوی یقینا صدق می کنن تا انشاءالله در جلسات بعد به ملاکات بعد بپردازیم و الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین